بسم الله الرحمن الرحیم برام خداوند بی اندازم اتربان نهایت لام میم در نازل شدن این کتاب از جانب پروردگار جهانیان هیچ شبهی نیست آیا می محمد آن را افتراع کرده است؟ هرگیز چنین نیست بلکه این کتاب حق است از جانب پروردگار تو تا مردم را بترسانی که برایشان پیش از تو بیمدهنده نیامده است تا باشد که رحیاب شود خداوند است آنکه آسمانها و زمین و آنچه را میان آنهاست در شش روز آفرید سپس بر عرش مستولی شد شما با جز او هیچ دوست و هیچ شفاعتگری ندارید پس آیا پن نمی گیرید همه کارها را از آسمان تا زمین او اداره می کند سپس در دوره یک روز که مقدار آن از چیزی که شما می شمارید یک هزار سال می شود همه امور و سوی او بالا می رود این است وصف دانای پنهان و آشکار ذات صاحب قدرت منعی و مهربان آنکه هر چیز را که آفریده نیکو آفریده و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد. و سپس نسل او را از نطفه از آب بی قدر میان آورد سپس او را به شکل مناسب برابر گردانید و در او از روح خود دمید و برای شما گوش و چشم و دل داد ولی اندک است این شکری که می کنید. و می گویند آیا چون در زمین گم شویم یعنی جسم ما خاک شود آیا در آفرینش جدید قرار خواهیم گرفت بلکه این سخن را از سبب می گویند که ایشان از لقای پروردگار خود منکرند بگو فرشته مرگ که بر شما موکل شده شما را می میراند سپس به پروردگار خیش برگردانیده می و اگر می دیدی هنگامی که گناهکاران در نزد پروردگار خود سرف گنده اند و میگویند گویند ای پروردگار ما اکنون این حالت را دیدیم و این سخنان را شنیدیم ما را به با دنیا بازگرداند تا کار شایستهی انجام دهیم ما اکنون به یقین کاملیم اگر می خواستیم برای هر کس هدایت او را می دادیم ولیکن سخن من حق است که دوزخ را از جینیان و آدمیان در مجموع پر می کنم. سپس این عذاب را بچشید به این نسبت که روبرو شدن به این روز خود را فراموش کردید بگمان ما نیز شما را فراموش کردیم و عذاب همیشگی را بچشید به سبب اعمالی که آن را مرتکب می و واقعا کسانی به آیات ما ایمان دارند که چون به آن پنداده شوند به سجده به روی می و به ستایش پروردگار خیش تسبیح می گویند و ایشان تکبر نمی پهلوهایشان بر بستر آرام نمی گیرد و به پروردگار خیش با خوف و امیدواری دعا می کنند و از آنچه به ایشان روزی ساختیم خرج می کند هیچ کس نمی داند چی شادمانی ها و چشم روشنی هایی برای در نظر گرفته شده و اکنون از نظر دور نگه داشته شده است و این به جزای اعمال نیکویشان است پس آیا کسی که مسلمان است مانند کسی است که فاسق می باشد؟ نه هرگز این دو گروه برابر نیستند اما کسانی که ایمان دارند و کارهای نیکو انجام دادند برای ایشان باغهای برای بودوباش است و این مهمانی ایشان به سبب اعمال نیکیست که انجام می دادند اما فاسقان پس جای ایشان آتش است هر باری که بخواهند از آنجا بیرون شوند در آن بازگردانده می شوند و به ایشان گفته می شود بچشید عذاب آتش دوزخ را که آن را دروغ می پنداشتید بیگمان ایشان را از عذاب نزدیک پیش از عذاب بزرگ یعنی آتش دوزخ می چشانیم تا باشد که به حق بازگردند و کیستمگارتر از کسی که به آیات پروردگار خیش پنداده شود و باز از آن روی برتابد بیگمان ما از گنهکاران انتقام گیرندهیم بیگمان به موسی کتاب یعنی تورات را دادیم از این رو از برخورد با آن در شبهه مباش و آن را هدایت برای بنی اسرائیل گردانیدیم و از میان ایشان رهبرانی گردانیدیم که با حکم ما رهنمایی می نمودند چون شکی بایی ورزیدند و با آیات ما یقین حاصل کردند گمان پروردگار تو هم اوست که در میان ایشان در مواردی که در آن اختلاف می در روز قیامت فیصله می کند آیا به ایشان رهنمایی نشد که پیش از ایشان چین های را هلاک گردانیدیم و اکنون ایشان در سرزمین هایی که همان پیشینیان به سر می گشت و گذار می کنند بیگمان در این نشانه هاست آیا ایشان گوش فرا نمی دهند؟ آیا ندیدند که آب را به زمین سخته بیگیاه جاری می سازیم؟ پس با وسیله آن کشت را می رویانیم تا از آن مواشی ایشان و خودشان بخورن آیا نمی بینن؟ و می گویند این پیروزی چی وقت بسر می رسد اگر راست گوید بگو در روز سر رسیدن این پیروزی برای کافران ایمان آوردنشان سودی ندارد و نه هم به ایشان مهلت داده می شود لذا از ایشان اعراض کن و انتظار بکش یکینا ایشان نیز با ناباوری و انتظار چنین روزی هستند